بسیاری از خرد حوادث شبیه بسیاری از خرد حوادث دیگرند و کتابها مملو از همین خردها تو که کتابها را بهار چین کرده ای حق است که آشغانه آرامت را نیز چونین کنی مأموران آقبت به خانه ما می آیند. آنها از صاحب خانه می پرسند که چرا خانهاش را به ما اجاره داده است صاحب خانه خون سرد و طلبکار میگوید می شناسمشان یعنی مرد را میشناسم پدرش از چایکاران شمال است مال لاهیجان ما با هم رفاقت و خیشی داریم خاله بزرگ من همسر یکی از اموزادهای این آقای چایکار است یکی از بچه های من هم شاگرد این آقا بوده در انزلی عجب میداند میآیند سراغ ما به من میگویند را افت شهر را با چهار تا کتاب کهنه به هم ریختی و ریختی چند ماه است به دنبالت هستیم تو باز آن جسارت قریب آذریت را بروز می دهی. راه بر من می نمیگذارم نمی گذارم ببریدش من پاب ما هم تنها هستم یک جو شرف داشته باشید یک جو قیرت کتاب کهنه فروخته نامردی که نفروخته وطن که نفروخته نمی گذارم دستی تو را پس میراند دستی تو را به جانبی پرت میکند، من درگیر می شدم. فایده ای ندارد در مقابل آنها مثل موش هستم دیگر هیچ فایده ای ندارد اولین فرزندمان را به احترام عشق به وطن و آزادی به خاک می سپاریم. خداوندا کینم را به دشمنان میهنم عمیق‌تر کن و زخم روحم را تر خداوندا خوف از ظالم را در من بمیران و توان آن عطایم کن که تخت سینه ناکسان بکوبم بی‌ترس از عواقب خوفانگیزش خداوندا کینم کینم ام تو میگویی مسئله نیست گروهی زود میمیرند گروهی دیر و گروهی هرگز نمیمیرند ما تنها از تاریخ نیستیم پس مسئله نیست مسئله نیست اگر هنوز هم عاشقیم چرا از کنار زمان عذا با قدم های بلند رد نشویم؟ صق جدی است اما ابوس نیست محبوب ازری من اخمهایت را باز کن تا آن زمان که زنده ایم خوشبختی نیست مانند آب و محتاب نمیتواند دروغ باشد ما همانگونه که به داشتن امید محکومیم به تصرف خوشبختی نیز. برای ما راهی جز حفظ اعتقاد به خوشبختی و تلاش خیر سرانه به قصد رسیدن به این منزل امن باقی نمانده است باید از یاد ببریم که محتمل است سعادت چیزی دور از دسترس باشد چرا که تنها اعتقاد به اینکه سعادت دور از دسترس ماست سعادت را دور از دست ما نگه می دارد. هیچ چیز همچون اراده به پرواز پریدن را آسان نمی کند هیچ چیز همچون باور ساده دلانه و سمیمانه سعادت سعادت را به محله ما، به کوچه ما و به خانه ما نمی آورد. سعادت شاید چیزی نباشد الا همین اعتقاد مؤمنان به سعادت. محبوب آذری من، اخمهایت را باز کن. بوی سیب زمینی های برشته زیر خاکستر اتر سیب گلاب همچون مسافری عزیز که از دور دست بر خاک خاک بنشین به من تکیه کن و سوختن سخت این حیمه مرتوب را بنگر برادرت خود را از جادوی شعله خلاص می کند بر می و به درون شب می رود. باز فریاد شب شکافش از اعماغ دور می لرزاندم. من در آوازش تنها واژه ترجیعش را می فهمم، جان و شور مرد جوان را برای آن که تمامی حس خیش را به قلب این واژه منتقل کند احساس می کنم. شب به کناره سهر می رسد. بچه ها در کلبه پدر بزرگ آسود دیگر، شاید که دغدغه ای نیست نمازی دیگر باید خواند، عبادتی دیگر باید کرد. دیگر شاید که دغدغه ای نیست شب به کناره سهر رسید، انقلاب از راه. گیل مرد را فرا می خانند. سالهای غیبتش را سالهای خدمتش قبول می کنند. میگویند که حق دارد هر جا که میخواهد تدریس کند. گیل مرد اما به آوارگی دلبسته است. به تدریس در خانه ها، به آن زیر پله باریک و آن کتاب های کهنه، به آن سفرها ها و ها، بانوی آزری نیست. انسان کار را انتخاب می نه کار انسان را. برایشان مقدور نیست که به عادت تسلیم شوند. بچه ها هم دلشان نمیخواهد که آن گونه نزمی در کار باشد، گرچه پسرک در مدرسه در مقابل شغل پدر نمیداند که باید چه جوابی بدهد شاید شاید که دیگر دغدغه ای نباشد برویم رودبارک بدون مه بدون اتوبوس زندان از آنجا به سرد چال برگردیم برویم عباس آباد بدون مه از آنجا به جانب شمال غربی از کنار دریا عشق باید مثل پرسینه کاکایی ها نرم باشد. برویم لاهی جان. دیگر از پدر خبری نیست. از آنگیر. مادر که هست. اموهایت که هستند. آن باغ کوچک چای که میرود تا بالای تپه. چای کاران قدیمی دورت جمع می شوند. حالا همه چیز درست می شود؟ هیچ وقت همه چیز درست نمی شود؟ چون توقعات ما بیشتر می شود و تغییر می کند، هیچ گله آخرین قله نیست، رسیدن قمنگیز است، راه بهتر از منزلگاه است، برویم بیان که به رسیدن بیندیشیم، اما واقعا برویم.